زبط کردن اینا خیلی سخت شده. چون که بار فکری این که قرشنده بشه هی، حوی تر میشه. چون که دیگه الان یه جوریه که وقت نمی همینجوری همین جوری چیزی زبط کنم و بهش دردی نخوره. یه فشاری رومه که اگه دارم این وقتو میزارم میذارم حتما یه نتیجهی بده. درک لازم نیست. فقط چیزی که خیلی مهمه اینه که من این رو تاریخ بزنم یه نگه دارم. درسته به درد نمیخوره و ولی به درد خودم که میخوره حندغله اینه که بدونم که تون صدام چه تغییری کرده یا یعنی اینکه توی بیان کلمات چطور عمل میکنم؟ بهتر شدم یا بدتر شدم؟ همین الان دیگه مدت زیادی از روز رو به حرف زدن میگذرونم قبلا هم اینجوری بودم ولی بیشترش به شنیدن میگذروندم آخه یه اتفاقی افتاده که اتفاق نه یه تصمیمی گرفته شده یه انتخابی صورت گرفته که شما در جریانش نیستید امروز توییت دیدم که نوشته بود که دو سال جایون زبت داره کار میکنه گفتم آه دو سال شد چی رو زود گذاشت من تو این دو سال هیچ چیزی زبز نکردم که بخوام اشتراک بذارم میدونی خیلی وضعیت عجیبیه اگر میخوام بتونم این کار رو انجام بدم بایده که خودم کم کنم اولین محدودیتی که توی دی که این پادکست گذاشته شده اینه که باید بدون متن باشه و بدون آمادگی و به صورت بداهه این کلی کارو سخت میکنه دومین چیز اینه که این انتخابی که خودم کردم تصمیمی که خودم گرفتم. که در مورد چیزایی که زمان دارن حرف نزنم که این نفر بتونه الان پادکست دو سال پیش منو گوش کنه و کماکان تازه باشه در مورد مسئلهی روز نیست حتی با اینکه در مورد اتفاقی که اون روز افتاده این یادم کار سخت یه محدودیت دیگه هم که هسته که با خودم قرار گذاشتم به حریم خصوصی خودم و بقیه احترام بذارم. اون دیگه خیلی کار سخت میکنم. و چیزی که الان حتی سخت ترش میکنه همون چیزی که شما ازش خبر ندارید توی این دو سال اتفاق افتاده. من اواخر بهار امسال 1402 از کار قبلی اومدم بیرون که نمیدونید چه چون در موردش حرف نزدم و یه مدتیو بیکار همجور گذروندم. یه سر چیز مختلف دیدم از آموزش نقاشی برای کتاب کودکان بگیر تا یه کلاس درسی در مورد زیست رفتاری انسان هر موضوعی فکرشو بکنی که به نظرم جالب می اومد نگاه کردم خلاصه یه روز همینجوری نشسته بودم خواهر هم گفت که دوست داری؟ کار کودک کنی رفتم دفترامو ورداشتم برداشتم و گفتم بیای فکر کنیم چی کارم بکنم یه سری چیز نوشتم یکیش پادکست بود یکیش یوتیوب بود یکیش هم برنامه نویسی بود خرشم نوشتم کار کودک حالا دفترم همراهم نیست ببینم دقیقا چی نوشتم و ایست توی مایه نوشتم بعده چند وقت ما بهم گفت میری گفتم آره میرم مصاحبه کلن دوست دارم برم تجربه میشه دیگه گفت برای مهدی گفتم آه. اوکی؟ رفتم اونجا و مسابی کردم خیلی خوشم اومد خیلی خوششون اومد اونجا صاف رفتم سرکلاس و شدم مربی پیشتوستانی حالا از اون موقع به طور ای زندگی من فقط همین چیز پر کرده اون کاری که اونجا انجام میدم بچه ها همکارای اونجا شده کل زندگی من یه مدتیه که منطقی هم هست هرچی باشه یه کار کاملا جدیده بر من یه حوضه کاملا جدیده اصلاً هیچ ربطی به هیچ چیزی که تو گذشتم بوده نداره به این که چرا خیلی اتفاقا خیلی ربط داره به گذشتم یه جوری که انگار همیشه داشتم برای این آماده می شدم ولی هیچ وقت نمی فهمیدم که دارم چیکار کام چون که خیلی چیز عجیبی بود زندگی من من به چیزی علاقه داشتم که به درده هیچ کاری نمیخورد دردش کاری که من خبر داشتم نمیخورد من علاقه داشتم در مورد همه چیز یه مقداری چیز یاد بگیرم هر موضوعی بگی چون کلن لذت اصلی که تو زندگی میبرم یاد گرفتن چیز جیده نه خیلی چیز بی خوده چون تو هیچ عمیق نمیشی و نمیتونی کار خار ای توش انجام بدی که توی اون تو چشم باشی چی میگم استانداد کنی این من از بچگی داشتم بچگیم از این کتابای در تول معرف و اینا می بزرگتر شدم با اینترنت آشنا شدم تو اینترنت میرفتم سایت آموزشی هی hey, چیزهای مختلف آموزش می دم. موقعی که هنوز کنکور نداده بودم. چیزایی مرد به درس نگاه کردم. مثلا یادم که فهمیده بودم شیمی دو سال آخر دبیرستان ما ایران اینن سال ای لول انگلیسه همون سرفصل به همون ترتیب بعد رفتم تو سایت بی بی سی بایت سایز سایتی بود ندامه تا مهنزم هست برای بچه های مدرسه ای بود توش ریسورس های درسی گذاشته بود منم تازه انگلیسیم خوب شده بود تا حدی حد بعد میرفتم اونجا درسای کلاس سوم چهارم اونا رو میخوندم, اون. میخوندم که اون سالای پایین ترشون یه سری چیز می داشتم. مثلا یه دون بازی داشت که توش یه شخصیتی میرفت و سیارای مختلف میرفت ازش سوال می پرسیدن. جواب میده انگار که مثلا امتحان از درس مختلف ازت بگیرن بل تو بازی اونو ما انجام می دادم یا آموزشدی یکی گذاشته بود مثلا یادم که برای درس ادبیاتشون زبان انگلیسیشون مثلا اونجا ویدیو بود که کتابایی که بعد میخومدن و خلاصش گفته بود تحلیل کرده بودین گفتم اونا رو می دیدم. ش هم دیگه یوتیوب بغل کردم و همش یه سری چیز نگاه کردم. یه مدت مثلا علاقم شد الکترونیک برفتم. یه یادم کانال در مورد الکترونیک پیدا می کردم هم نگاه کرد. بعد مثلا علاقهم می شد داستان نویسی یه سری چیز در مورد داستان نویسی پیدا کرد. علاقم شد پادکستینگ میرفتم چند تا کانال در مورد پادکست درست کردن نگاه کردم. میخوردمشون میجویدمشون و یاد میگرفتم یکی از همین دوره های یه موضوع جدیدیات گرفتنم همین پادکاستینگ بود که یه چنل بود برایم پادکستیج کارش موقع که من نگاه میکردم واحتمالا هنوز این بود که ابزار ضبط صدا مثل میکروفون، کارت صدا، اینا رو بررسی میکرد. به من نشستم همه اینو رو نگاه کم. بعد تصمیم گرفتم این دستگاهی که همون دارم بخرم. رفتم یه یک جا دیگه ایدیت کردن یاد گرفتم. این اینا، بعد این کار کردم. دیگه یه دوره قبل از اینا مثلاً توتوریال های برنامه ایسیو نگاه میکنم بعد اون شغل چندین سال آیندم و تحت قرار داد یکی ای از اون چیزایی که و یکم تو خودم عمیق تر میشه فکر کردن و حرف زدن بهشون باز میکنم با تو دو تد دوستان تصمیم گرفتیم که ما کار این شکلی بکنیم و یه روز صبح ساعت هفته صبح پا شدم. توتوریالی که دانلود کردم و تو تلویزیون گذاشتم دیدم تا تموم شد. رفتم شروع کردم نوشتن کد. کد داغونی که خیلی نظر امنیت افتضاح بوده اینه ولی خوب یه کاری انجام میده خلاصه چیزی که اگه قبلا به پادکست دیگه داده باشید میدونید که من مدت 6 ساله که یه خواهر زاده دارم و باش ارتباط خیلی نزدیکی دارم. تو این مدت من خودم یاد دادم که چطور با این بچه رفتار کنم؟ و چطور بهش چیز یاد بدم؟ همه این اتفاقات روی هم، باز شد که من یک کاندید خوی بشم برای یه موقعیت شغلی به نام معلم روی پنکی اینکه نفر بهتون این کار بکنه دقیقا باید یه عالم چیز در مورد یه عالم موضوع بدونه ولی لزومی نداره خیلی عمیق باشه چون داره به بچه کوچیک یاد میده فقط کافیه بتونه در لحظه بچه ها رو مواجه کنه با یه چیزی که ظرفیت گرفتنشو داره. در اون لحظه به جای اینکه از روی نقشه راهی چیزها رو درس بده یعنی مثلا اگه یه دعوام شه لازش بمانی فرصت استفاده کنی که یه چیزی یاد بده یه چیزی مثل اینکه حرف بزنیم خواسته رو بیان کنیم اگر از چیزی ناراحتیم بگیمش به که از دستامون استفاده کنیم به قول ما یادم توی مساهرم ازم پرسید که چرا هم خواهی با بچه ها کار کنی؟ گفتم من توی زندگی به خلاقیت نیاز دارم. برام خیلی مهمه که به خلاق باشم. اونی که به هم حس خوبی میده. و چیزی که دیدم اینه که بچه ها توی یه لول دیگه ای، توی یه مرحله دیگه یا خلاقیتن با خاطر که هنوز هیچ چهارچوب خاصی خواستی ذهنشون نداره و من اومدم که از این بچه ها خلاقیت بگیرم اومدم ازشون چیزیات بگیرم و این مثل این که چیز خیلی مهمیه الان که چند ماهی دارم کار انجام میدم متوجه شدم که اگر خیلی خودتو جدی بگیری و فکر کنی که تو آدم بزرگی ای و قرب به اونو یه چیزی یاد بدی فرصت اینکه که پذیرای این باش که چیزی ازشون یاد بگیری و ازت میگیره و باعث میشه نتوین درست بشنویشون و نتونی اونجوری که باید باشون ارتباط برگر کنی محیط کار عجیبیه برای من خیلی متفاوت از اون چیزی که بهش عادت دارم توش آدما از کار مهمتره تمام این کار روی این بنا شده که تو بتونی ارتباط انسانی درستی برقرار کنی و مهمتر از اینکه کارتو درست انجام بدی اینه که بتونی با آدما درست ارتباط برقرار کنی در واقع فقط در این حالته که میتونی کارتو درست انجام بدی و این خیلی حزمش برای من سخته و من خیلی دوست دارم که یه روشی کار رو درست پیش ببرم. کار با بچه ها رو خیلی دوست دارم. ولی برای من به شدت خسته کننده است. از نظر ذهنی کاملا تخلیم میکنه. چون من باید تحلیل کنم که چه اتفاقی داره میفته این بچه داره چی میگه حرفی که میزنه از کجا میاد میتونه به کجا بره من چیکار میتونم باهاش انجام بدم و برعکس تک, تک کلمات که انتخاب میکنم باید با دقت انتخاب بشه هر کدومش یه عالم بار معنایی داره و مقدار زیادی فکر میبره اینا اگر نخوای اتوماتیک انجامش بدی به صورت خودکار همون چیزی که تو لایه های پایین ذهنت حک شده رو انجام بدی همون کاری که با تو کردن اگه بخوای یکم بهتر از اون عمل کنی باید دائما فکر کنی که داری چیکام هم کنی بقیه دارن چیکام هم خیلی انرژی میبره بره چیزی که من بهش فکر نمی کردم و منتظرش نبودم این بود که چقدر در مورد روابطه بین آدما چی زیاد میگیرم وقتی توی این موقعیت قرار دارم میدونستم که قراره مقدار زیادی خلاقیت هر روز ببینم به خاطر اینکه این, این سالی که با امین خواهر زدم بازی میکردم اینو میدیدم ولی نکته ای که داشتیم بود که من همیشه با امین تنها بازی میکردم و اون اتفاقی که وقتی آدم و با هم ارتباط دارن و توی یه فضا چند تا بچه رو ندیده بودم بعد دیدم که خالصترین شکل رابط انسانی بین بچه ها اتفاق میفته و خیلی راحت میتونی ببینیش تو ببینی که یه بچه به بچه دیگه میگه اگه این کارو کنی دیگه با دوست نیستم. و می ا این نسخه ساده شده از یه رفتاری که آدمای گنده هم انجام میدن فقط مال اونا خیلی پیچیدگی و پیچ و تا بیشتری داره به همین سادگی نیست. میبینی چطور بچه ها با هم مذاکره میکنن میبینی چطور با هم درگیر میشن و میبینی که همه اون الگو رو توی آدمی بزرگم میبینی فقط اینجا دیدنش خیلی راحت تره یا مثلا میبینی که چطور یه بچه وقتی نمیتونه ناراحتیشو ابراز کنه بیانش کنه از خودش خشم نشون میده میبینی یه بچه برای اینکه که حس کنه داره شنیده میشه چه بازیایی در میاره میبینی چطور به همدیگه قور میزنن به طور کل تجربه بسیار جالبیه ولی خیلی خسته کننده است. دوست داشتم میتونستم بیشتر و با جزیات بیشتری در موردش حرف بزنم ولی در مورد حریم شخصی سری بچه داریم حرف میزنیم و خانواده اون بچه ها و من، و همکارانه خلاص این که ترکیب چند تا موضوع باست میشه که من نتونم به این فکر کنم که قسمت پادکست دیگه ای بدم بیرون تمام زندگیم شده کار با بچه اصلا از خیلی اتفاقات روزمره ساده خبر ندارم از خیلی خبر رو خبر ندارم اونقدر خسته میشم که زود میخوابم یا دیگه توان ذهنی این که بشینم و حرف بزنم و ندارم و چیزایی که میتونم در موردشون حرف بزنم شون یه جوری به حریم خصوصیه یه سری آدم یه سری انسان مربوط میشه. کار که میتونم بکنم اینه که در مورد مسیری که خودم دارم طی میکنم صحبت کنم. کنم صحبت در جوریه. نمیتونم یه حسه نه دوزوی نه حس بد نسبت بهش داشته باشم یه حس مثلا خود مرکز بینی خود مه بینی مثلا چیزی میشه گفت بهش یه حس در باره خودم حرف زدن داره که خیلی حس عجیبیه برای این کاری که من دارم میکنم چون که آدم خودشون تصمیم میگیرن که به این گوش بدن من کسی زور نمیکنم به حرفای من در مورد خودم گوش بده نمیدونم شاید اونقدرم کار سختی نباشه قسمت سختی که داره اینه که باید به مشکلات خودم هم اتراف کنم اگه میخوام مثلا در مورد گذر کردن ازشون حرف بزنم اونم دیگه خیلی کار سخت نیست برام خیلی وقتی که تا حد زیادی شجاعت اینو پیدا کردم که با خودم رو روبرو بشم اونقدر سخت نیست به بهجز چندتا موضوعی که زنم خیلی اجازه نمیده برم سمتشو فرار میکنه چیزی که تا الان شنیدید گذیدهی بود از چیزی که من چند ماه پیش زبط کرده بودم و به خاطر این که این که الان دارم زبط میکنم و هنوز زبط نکرده بودم همینجوری مونده بودی گوشه اینجا پادکست اونجایی که معمولا یکی دوتا نظر از شنونده می‌خونم میخونم و یا آهنگ معرفی میکنم پخشش میکنم این دفعه این قسمتی فرقی با دفعه پیش داره اینکه کسی که قراره نظرشو بشنوید به درخواست من لطف کرد و برای من صدا فرستاد و قرار صدای خودشو بشنوید به اینکه من بخونم که خیلی خوشحالم از این قضیه کلنم این قسمت رو تقدیم میکنم بهشون به زهرا که به من ایمیل داد و پیگیری کرد بهم گفت که هر ماه بهت ایمیل میدم تا یه دونه قسمت پادکست بسازی به این کار کرد تا اینکه من این قسمت رو ساختم و براش فرستادم. حالا الان صدایی که بر من ضبط کرده رو با یکم ویرایش بر اینکه مدت زمانش کوتاه تر بشه میشنوید سلام میکنم به تو محسن عزیز و همه کسی که صدای منو می میشنون خب اول از همه بگم که خیلی خیلی خوش حالم که دوباره پادکست ساختن رو شروع کردی چون که از ازمه تو یه هنرمد واقعی دیگه که سبتا صده کارای پادکست رو خودت انجام میدی از ساختن آهنگ واسه بگراند پادکست ها تا حالا ضبط و ویرایش رو اینا رو خودت انجام میدی و هم از لحاظ بود فنی که حالا، اون کیفیت صدای واقعا فوق العاده است و اون لحن صحبت کردنیت که با آرامش و تمنینه هستش باعث میشه که یه حس آرامش به اون مخاطبت و شنونده القا کنی و اینکه موضوعی جذابی که انتخاب میکنی دیگه به قول خودت یه جوری انتخاب می کنی که حالا هر کسی تو هر زمانی که گوش میده ده تازگی داشته باشه اون اطلاعات جذاب باشه اپدیت باشه حالا از جذاب بودن موضوع گفتم خودت می دیگه همینو بس که کتاب صفحه نامی ابن بطوتر رو خدیدم و اینکه وقتی در مورد یه موضوعی صحبت می کنی توی یک مسیر اصلی صحبت نمی کنی دیگه حالا واردی بحثایی دیگه میشی شاخ و بد میدی اون شاخه به شاخه شدنش باعثشه که این رونده یک به وقت اون کسل کننده نباشه دیگه و خب فکر می این آدییت بودن موضوعات حالا اون اطلاعاتی که داری همش به خاطر اون وسواسی که خودت تو کارت داری و اون حس کمالگرایی ایدالگرایی که داری دیگه اینکه که همش میخوای مفید باشی اطلاعات به روز بدی اینا فکر کنم از این حسه تو وجود خود سرچشمه میگیره ولی فکر میکنم یه جاهایی این حسه وسواسه این حسه کمالگرایی داره بیشتر میشه به طوری که داره بیشتر به خودت آسیب میزنی دیگه یه بار روانی بیشتری روی خودت اعمال میکنی خب فکر میکنم قدره هم نباد دیگه سخت بگیریم دیگه و اینکه حالا حالا هرچی که هست ازت میخوام که این واسه توی کارت رایی خورده کمتر کنی دیگه اینکه آدم این دیگه آدم هم ممکنه یه سری تراشکمو زیاد باشه، به روز نباشه، یه کوچولو اشتباه باشه، آدم دیگه، انسانیم دیگه و این که حالا از همه اینا بگذریم، هرچی که هست، خیلی چیزای مفید از عزیات گرفتم، خیلی خیلی چیزای خوب از یاد گرفتم و اینکه امیدوارم که این پادکستی که دوباره شروع می‌کنی، شروع پر قدرت و ادامه دار باشه. و اینکه موفق باشی دوست خوبم ممنون زهرا به خاطر صحبتهایی که با هم کردیم به خاطر پیگیری که کردی و دلیل وجودی قسمت شدی و اینکه خیلی لطف داری و حرفت خیلی درسته که موقع آدمیم دیگه خودم هم میکنه. فقط من یه تصیحی بکنم هیچ کدوم از قسمت هایی که تا الان پخش شده من آهنگش رو خودم نساختم فقط خودم انتخاب کردم گوشتم روش قسمت قبلیم از دوستم سینا زندیه که موزیسین بسیار قابلیه کمک گرفتم که آهنگ انتخاب کنم خیلی خوب شد خیلی نشست روی اون قسمت و زهران برای این این حرفو زده که من یه لوپ پیانوی که در واقع لوپ آکورد بود که داشتم روش فکر میکردم که از توش یه چیزی در بیارم برای این قسمت برش فرستاده بودم ولی توانایی به اون جایی نرسیده که یه آهنگی که به دلم رو به بسازم. یه چیز دیگه هم که هست اینه که این سه شنوندهی که داره به من میگه که کتاب ابن بسوتر رو خریده. و برم خیلی جالبه که با اینقدر تعداد شنوندهی پایین اینقدر تاثیرگذار گذار بوده. یعنی انگار یه خیلی خوب بوده برای اون کتاب که واقعا حقشه واقعا خوندنیه و خیلی فوق داده است که اصلا همچین چیزی وجود داره انگار که یه اسنابشات یه تصویر از اون دوران توی بخش بزرگی از دنیا رو داری خیلی جالبه چند روزیه که دارم فکر میکنم که یه آهنگم انتخاب کنم و بذارم ته این قسمتو رو منتشرش کنم. آهنگ که انتخاب کرده بودم یه آهنگ از خوانده فرانسوی دالیدا بود که با آلن دلون همکاری کرده بود و این آهنگو خونده بود. و خودم این آهنگو توی یه انیمیشنی که خیلی وقت پیش دیده بودم و خیلی روزش دارم. شنیده بودم هم اینه که آلندالون توش نقشه مردی و بازی میکنه که امواع هدایا رو برای دالیدا که نقشه زن رو بازی میکنه میبره و اون زنم بهش میگه که من هیچ اینا رو اینارو نمیخوام چونکه اینا همش حرفه کلمات پوچه بعد داشتم به این فکر می که این آهنگ انتخاب کنم و بیام این قسمت رو ضبط کنم که خبر فوت شدن قالندلون اومد بعد دیگه مسمم شدم که حتما همین آهنگو رو نه آهنگ دیگه ای آهنگ خیلی زیباییه مضمونشم خیلی جالبه خیلی برای من الان نزدیکه و و صدای نماد جذابیت مردونه توی اون دوران آلندلون و صدای دالیده واقعا که هم بار اول که میشنوی احساس قوی داره و تکرارشم خستت نمیکنه یادشون گرامی هنرشون جافدان این قطعه رو از سال 1973 بشتم شبتون بخیر Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. des mots fragiles, c'est La seule vérité mais c'est fini le temps de rêves les souvenirs se fall aussi quand on les oublie tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses Caramel, bonbon et chacola par moments je ne te comprends pas Bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi les mots tendres de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole. sur les dunes caramels et chocolats si tu n'existais pas déjà je t'inventerais merci pas pour moi mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes moi les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche mais jamais sur mon coeur Juste une parole. parole, parole, parole. Écoute-moi. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. paroles Que tu es belle. Parole, parole, parole, que tu es belle. Tu